و الحمد لله رب العالمین و صل الله علیه سید و رسول الله و آله طیبین و طاحتمین و محسومین و لحظه دائمت و علیه دائم مجمعین اللهم ارخم را جمعی المشتردین و ارحم نادرحمتی که یا ارحم الراحمین بحث در اختام صحب بود یک مطلب رو به عنوان تکمیم بحث شون ما این روایتش سابرن خوندیم با این توضیح که دادیم و از اون روایت روشندتر میشه در وقتش خیلی توضیح داده نشد امس کردم ادهی از علمای اهل سنت در کتاب اهل سنت فردیشون و همین کتاب حدیث و در بعض از ما هم آمده که سحر و تعبیر به کفر کردن و استدلال قرآنشون به همین آیت است نشهاتی این کفر رو یعلمونن ناسسته این آیه تمسکن اصلا راجع به مسادر ما یک روایت که از سکونی نهر شده که پیغمبر از امیر مونی که صاحب المسلمی یقتر و صاحب کفار لا یقتر و این روایت سکونی در مسادر اصلی ما هم آمده مثل کافی اضافه بر این توی بعضیش داره که ولدار رسول الله لم یک تون لبید نه اعصم یا آسم این یهودی که از رو سیر کرده و این تو این مقدار آمده من ارز کردم که ما من حیث المجموع هم در اوائل قرن اول و هم در اوائل قرن دوم مجموعه احادیسی داریم که نسبت به همیر المؤمنین داده شده که خب اینو واقعا با باید بررسی خاص خودش بشه در ربعه اول قرن اول یعنی سلطه اول این کتاب الخضای ها و سمن ول احکام به همین عمومی نصف در عوائل قرن دوم کتاب مصند زی که گایی هم بهش مجموع فقهی میگن شخصی بوده به من همه ربن خالد واسقی از زی از پدر سلده سجاد از پدرشون امام حسین ان علیه نرد هزار حدیثه شده اهل سنت خود امر ابن خالد جهال میدوند کذاب میدوند در کتاب ما در کشی به نهل از ابن فضا توصیح شده امر ابن خالد توصیح شده زای خویه میره واسه چه قبول میکنه روایات مسند زید من ارخمون به برینه 25 تا 30 تاش در کتاب اربعه ما آمده نسبتاً بیشترش تو کتاب مرموم شیخ توصیح آمده چند تاشون تو کتاب کلینی چاپش از کتاب معلوم شده اما بیشتر کتابات خودینه حالا من نمیخوام وارد شهر تاریخی اون بمواجه ششم این مصطلحه رو مرحوم استاد قبول کردن به خاطر اینکه عمرو بن خاله توصیف شده اما بین اهل سنت متفقان علی کذب یعنی کسی از اهل سنت رو توصیف نکرده فرد جهال و زبا و کذابش میدونن در میان زیدی ها هم دیدم من یک مورد مصدرش تو ذهنم نیست اونا هم کردن که این کتاب سا بزنیست لیکن مؤزم زیدی ها همین زیدی, ها همین زیدی که الان هست در یه همه قطعا به این کتاب اعتماد کردن این اولین است که ما الان موجود داریم و نقه صحابه از جدش نقل کرده من این توضیح مفصل ارز کردم این در دنیای اسلام یکی از ریشه های ما دینی ما همینه این چیزی عقلش داریم زیاده از قرن اواخر در محضر نوه ادهی از صحابه از اجزادشون کتاب های نعم که چند تا شئی محروفه یکی نوهی نوهی امرعاسه از عبدالله به سر عمر. این شئی محروفه این محروفه این کتابیست که اونها نه این معاصر امام باقر و صادق بوده امرو ابن شعیب اسمشه مثل اون جده علاش هم اسمش امره مثل همون هم خبیزه خیلی داره ب این کتاب ایشون نوه نوه همراعاسته کتاب جد دومش جد اعلاش عبدالله همراعاسته هم. یکی هم نوه عبادت خدم سامته از کتابی که نوه نوه یکی دو سخت هسته خیلی گنده نیست کیه که از اونها حدیث لازره این حدیث لازار توی کتابی بوده که نوه عبادت خدم سامت از جدش نوه هم تو بحث اول اشاره کردم اهل سنت تو این کتاب نظر دارن تو این نوشته خیلی روشن نیست احمد نه حنبل هم نقل کرده اما تو مسند نیاورده اما نقل کرده پسرش پسرش داره. به تو مستدرک آورده سرش یه چیزی زیاد داره اطلاقش زیاد است یا مستدرک به حساب تلقی بشه این اونجا بود این در میان اهل سنت که من نمیخوام وارد در میان چیه اول این کتابی که نبع الصالح نقل مسند این کتاب منصوب است که امام سجاد از سدرش امام موسیق از سدرش امیر حتی مستنزدش هم باره هستن و ازش خال امیر رسول الله داره هر دو داره و بعدها زمان امام صادق چند کتاب اینجوری نحوی شده هست اونجا توضیح هست که از همهش مشغول تر کتاب از همه اینا مشغول این شخص معلومات ما از این شخص در میان مصادر شیعه خیلی کمه اون مقداری که با معلومات یعنی. از مصادر اهل سنت که مثلا قاضی موصل بوده متوفای سال 180ه یعنی امام کاظم مصلی رو کاملا در کرده و تي حالا وارد بحثی سکنیم چون چه جوش جو مناسب نیست نمیخوام بشن ایشون هم داره خاصه ثان یک شاخه عرض کردم از فرزندان ارمی و که نوادگان عمر ابن علی هستن. این خب اینا نوادگان حسین ابن علی بودن یه نوادگان عمر ابن علی هم اونا هم کتابی نظر میکرد حالا توضیح این کتاب ها و ارزیابی اونها اصلافا احتیاج به بررسی خاصی دار چون نه تمام برنید و برنید مومنیم مثلا اصلا مشروع ترشون یعنی اونی که ارزش بیشتر داشت همون قضایی ها و, و بود و از اجایه بوم اون کتاب با این که مثلا سالهای سی و هفت چهه شده حالا اون زمان همه منگه باشه از اجایه میشه بوده که مثلا کتاب های فقیه الان ما مبرب بوده این فقیه عجیبه در اون زمان ما اطلاقا کتابی نداریم در اون زمان نه اصحابه نه قید که مبرب باشه اگر اون کتاب ثابت باشه اولین کتاب مبرب در فقه اسلامی اونه کتاب الصلاه کتاب و ذکر کتاب اس اینجوری است. این کتاب خیلی هم عجیبه این واقعا. خب ایده از اهل سنت اشکال کنه همینه که این بون زمان نمیخواد این تبیین به زمان... انصاف هم چیز عجیبه این انصافا. و توضیحات ارثم کراره و اندرا از زمان امام صادق این کتاب بنشیه مهجور میشه. چرا چراش دیگه طولانیه؟ این کتاب در اختیار صاحب دائم بوده. دائم اسلام دائم به طبقه کلی و صدوقه. از زما ذكر کلینی متوفای 329 صد و 381 261 66 ببینم ما اس این خزانه کلینی قطعاً این کتاب موجود بوده اما نقل نکرده از هامونن هر کس اندازه در, در دائم یکی از این روایت سکونی کلام گفتیم که سائر مسلمین یختش سکونی هم داره یه احتمال هم داریم که ابدی از ابواس سکونی از همین کتاب قزایابش شده باشه می‌تونیدش بزنید تو سکونی همین مقدار داره که ساحل المسلمی، المسلمین یقتر و ساحل المسلمین یقتر اما در کتاب دائم اضافه داره میگه که در نصحر و در کتاب دیگه هم داره در دائم داره بعد میگه می که رسول الله لبیده بن حسن رو نکش اونم داره تو این کتاب دائم اونجا گرانان علیه گرانان علی علیه السلام بعدم داره که قال الله تعالی و ما کفر صلیم پس این, این معلوم میشه که سه کفره اینم داره بعد داره در دائم قال عدیبیان و حاضر شاهدان من به نظر من این اگر چند بار از کرم اگر بخونم بخوان اون کتاب قضایی رو بست و بس احکام رو بازیابی بکنم به نظر این یه تیکی از اون کتاب قضایی بس رو بست احکام به حدس قبیه من ده. این یه وقتی یه تیب کشت کتاب سکونی آمده حالا همهش همش تو سکونی بوده از خواب کردن چون این مطلی که اینجا آمده یه مقدارش تو کتاب سکونی هستان بقیهش حضب شده اما این متن کامل فقط تو دائم آمده در اصلا یعنی معنی عبارت چی میشه معنی عبارت این از همون قبل نرد در مؤمنی نسبت دادنی که از آیه کفر ک نه وقتی به این من علیه و سلام تو باکرینده نیامده یعنی کافر یا که صحیح کافر نه که این همین آی جا اون جایی و این که میگم قال علیان اگر نوار گوش بکنم اونجا این توضیح دادم اما این توضیح امروز بیشتر دادم قال علیان و حاضر شاهد و من القران این یک شاهد قرآنی گرفتن چون بلا که نشیافی میکرده بود و علمون اناس از سه نه هم نقطه کار رو دقیق کرده گاهی میشده یک مطلب و امیر المومنی نسبت داده میشده شاید مثلا تا یک شهت سال، هفتاد سال، هشتاد سال هم ادامه پیدا میکرده بعد اعمه جلوبشی میگرفتن این خیلی عزیبه این نقطه یه است. برای شناس منابع اولیه و بهتر در منابع اولیه خیلی کارساز و تأمل زیاد میشنه شده من توضیح شکران از کنم این کتاب علیه این در اختیار مذاهب غیر امامی بوده این یعنی در اختیار دائم بوده که اسماییه در اختیار زیدیه ها هم بوده و یه توضیحاتی ها تابقا اصلا خیلی طولانی اگه بخواه میگم بیمدرست چند دست با و مطالبیه که جاش الان اینجا نیست الان این کرک ماکان دفع بکنی این که این آیه مبارکه ناظر باشه که سهم کفره هر کردم در فرمون تحت هستم هستم هستم هستم هم هست تمسا به آیه اما الان در روایات ما نیست الا در کتاب دائم به این بلحاظ تاریخی درم براتون روشن شد دعایم در حقیقت از کتاب و قضای آبستونم ولی احکام گرفتیم و این که از شواهد این که قسمت هایی از کتاب فیما بعد حذف شده توسط زرینمه مثل همینجا مثل حدیث سکونی آمده اون صدش و صد حدیث سکونیست این زل یک حدیث سکونی نیست که این همه خیلی قابل توجه شواهدی هم زیاد داریم حالا دیگه جایش اینجا نیست علای حاله ما عرض کردیم ظاهره ولا که نشیات این کفر رو این کفر نه به اصطلاحی باشه یعنی که من زاتم شره ناز نه فقط اون به بشه یعنی ذاتش به و استعذابشو شره اما ممکن است یک نیروی الهی بیاد همون کارو اون رو, او رو بگیره اما در راه شر مصرف نشه فرض کنید مثلا مثال در همون طب قدیم الان حتی یه فلسه سنبه مار کشنده هست دیگه اما الان به ما دیگه بایی چیز که ازش باقفا این هم چیزی که شره با یک احاطه علمی با یک احاطه فنی با یک احاطه فرهنگی اون رو کنترل کرد مثل از سلیمان همون جنگ رو کنترل کردن یعنی در اون ماریش آمن محاری و جفان کل قدور راسی ها که بیگن دیگه های دو سر سنگ تراشیدن اون فون سر نفر توش می مطلب با اذن شر محضی که در اصل اصلا وجود داره تا اینکه اراده ای لگه اشاره مراد ما اینه ذاتن شره مثل ملائکه که ذاتن خیره مثل جن که ذاتن نه خیره نه شر مثل انسان مثل موجودات دیگه مراد این بود علایوهاله این توضیح رو فقط من مختصر عرض بکنم اون وقت پیش ما اولاتان به شرح عباراتی که در اینجا مردم شیخ حامد کردم شیخ هشت اسم رو از اینجا گرفتن ما هم طبعیت عزیزی می کنم للا تقسیم بندی سه به عنوان مختلفیه تا اونجایم که ما میدونیم یعنی من الان نمی دونم علم من کامل باشه اگر که روایت کتاب احتجاج روز باشه این احسام سه در احتجاج هم آماده از قول امام ساده امام فن و سه و علا احسام یکیش مثل تبه یکیش مثل شهرمز هست این در اون ک از رو اگر اون روایت درست باشه شاید اولین کسانی که احسام صحر رو متعرسوه امام صادر تا آنواله باشه خوب بود منون شیخ همون حدیث یعنی اول قرد اوات فخرازی ها نشابوری پس صحر اول صحری سحر بوده که راجع به کلدانی بوده به تحبیر ایشان در به شرعه و اینها کافر بودن از کردن ما الان که بررسیم میکنیم اینطوریه. ای کفر اونها به خودش به خودش اعتقال به خدا نداشتن اعتقال به صفحه الادی و ما الله نداشتن اسناد افعال الله نمی کنم کفر خودش اگر سهری که از اونها نقل شده همون مقدار باشه که در قرآن آمده یا خیلی علیه من سهره اونها تسعا که از کردم اون که نوشه شده در تصدیر آیه اینها مار ریسمان رو گرفته بودن در جایش کسانت هایی که نظر در جایش نظر بارید بعدم رنگ کرده رنگ مار مثل کله مارو اینها بعدم رویز ها جیوه ماریده بودن تو آفتاک که اچن را افتادن هر چیز این انجام بدهن این کار میشه اگر فرض کنیم سه که کلدانیم داشتن نیست که این بود داره فرض کنیم اگر فرض کنیم که باطنه ا سر حد سر این باشه این این صاحبش این عمال فینانسه حرام نیست مثلا یکی این حرام نیست یک فریسمان کلافتا بود راوی اپده که این حرام نه کفر نیست فسخم نیست بله اگر مدر یه نبوغت بشه اینو این رو در یه نبوغت بگه خوب برده بخواه دروغ بگه به مرگو از اون تدریس و کشف و دروغ بگه من این مار را از باب انابین دیگه ب خود این عنوان فی نفسه خوب دقیقه بکنی هست کردم ما چون دقیقا اون سهر کلدانی نمیدیم چی بوده اقاضدشون کفر بلایش کن این دول این عمل این عمل اگر حدش همین باشه حد درمان همین باشه که این هبال هم و اسیه این ریسمان ها را افتادن کفر ندارد نه کفر بر نفس نفسه برد نه داری چی هر مگر به اناوین دیگری ازافه ادعای دیگری بشه داخل بشه این ماله قسم ادبا بعد ایشون نرمو میکنه به تربیر مرموم شیخ هست یعنی به تربیر مرموم مجزی هی ادو از دو قصانی سه از حاب اوهام و نخلص قبیه این که کسانی که دعای نفس قبیه هستن ایلا میتونه سه رو کنه اون هم انواع مختلف داره اینطور نیست که یکی باشه حالا با عنوان جامعه گرفتن فقط صدات به وجود عدیده امکان تسلط صدات نحوز علا جواب هلغه راست این هم میتونه بودات شخصیت داره بگه دست بالای برکایی بیاره با اون بیختیار این کار رو انجام بده هم میتونه میگن در روزنو تنیم مقلاتیسی به طرف رو خواب میکنه مثلا میگه پنج ساعت ساعت پنج بعد از ظهر مثلا بروی کابو بردار بزن فلانه مجروع بکنم یعنی این شخص در همون سر ساعت میرون کار انجام بود از کم وجوه مختلف داده یک نراخ نیست میگن ثابت این نره اون اینکه نوشتن میرد هست سخته او قیام به حرکات به تعدیه اعمال حلاغیر اراده فلمه. من مندون بساطه شک این آخر یعنی همون تسلطه از بساطه شک مثلا کن ریسمانی به دستش بندازه بکشه با همون اراده قدی که داره از کردن این انحال مختلف داره و علمی هم این ثابته روحال نفوس به تکون ریاضات ریاضاتها ریاضه به اصطلاح عربی خوب ونه برزش به اصطلاح نوست به خاطر تکرار و عملی که انجام کار رو که انجام بده صافیت امی کدورات البدنی ممکنه که واقعا صافیتاً ممکنه نباشه یعنی به عبارت اون این تصم روحات نفس تا به اخلاقی نیستن ممکنی کسی نفسش اینقدر قوی باشه به خاطر اینکه که مثلا اعمال خوب انجام داده ممکنی کسی اعمال زش انجام داده نفسش هم قوی شده این لازم نیست انه کدورات بدنیه نه, نه نه تأثیر نفس رفتی به کدورات بدنیه ناده تر نیفی تأثیر و عمل استعانه به عدوات خارجانی اینه میخواد تناب بندازه با یک چشم نگاه بکنسه تناب از که معروفه که شخور ر آبو سعید مخاطب یکی فلسفه کیتومی ارزش واسه یک تشت سر کاسه آب انداخ بالا بالا گیر کرد گفت شما میگی فلسفه کی جسم ثقیل میل به پایین داره خب چرا اون بالا مونده خب بخاطر اینکه اگر مانع نباشه شیخ رئیس تو اگر مانع نباشه، و مانع نیست تو هوا گیر کی از این کاسه نمیفته گفت نه نم. اون تسلط نفس تو مانع تو بقول تو کشش فیزیک رو تو اون تاثیر نفس رو باید میخوریم طبیعتا جسم سنگ رو به پایینه این سرشینه قرارزم این که خود اینها میگن احتیاج نداره میدونه انسان با تاثیر قدرت نفس معروفه که تفاضل هستن با غد نفس مثلا قفاری در حال حرکت با سرعت نگه نمیداره این اینجوری چیزا نداره ال امور الغریبۃ و خارقۃ تکون و تکونو بله ضعیفتا نفس ضعیف و منسوج با اوصاف المواد این ربطی به اوصاف نداره این بحث ارزشی نداره اون یه بحث یعنی قدرت نفس هم مثل فوتباله این شدو شما همه افراد انسان میتونن باوجی تجربات بکنن که بشن فوتبالیست میخوان نه اون تو پاهای ما هست اما بنده به کار نمیبره که می کار بره عین این قدرت تو نفوس هم هست برای مثالش اینطوریه. نه اینکه مثلا دیگه این حالا مثلا کدورات بدنیه و اعصاب مواد فوتبال یاد گرفتن کاری اوساخ اعصاب و کدورات نداره خداوند در صفحات های ادم در بشر موجود یک قابلیت های گذاشته بعضی قابلیت جو با به اصطلاح فعلیت چیه که مثل حیوانات اونا دیگه قابلیت فعلیت, فعلیت مثلا الاغ میره الاغ الاغ الاغ نه لین و الاغ فوت میکنه دیگه فارغ برداشت تمام شده به نوع فعلیته اینطور نیست که قوه‌ای باشه بعد به فعلیت در بیاد اما شما پس پای شما یک قوه‌ای داره این قدره می توانید به, به لحلی کتفالی تربیه داشت میکنه همه این تو نفس شما سر میکنه کاری به اوساخ و موساخ را داره شماید که کدورات یا اوساخ نه بحث اوساخ نیست بحث ارزشی اونجا بحث ارزشی مطرح نیست یه قدرت که خداوند در انسان قرار داده ممکنه کسی فاسق فاجر اصلا احلیشه لیکن نفسش رو تربیت کرده این سیطره رو پیدا تهاره. ممکنم یکی بسیار مرز آبد و آلم و همه جاده کوب و نفسش این سرکل رو پیدا نکنید رفتی نداریم رفتی با اوساخ و کلورات نداریم و خود این مطلب درسته این خود این مطلب که انسان با نفس خودش و از کردن اون توضیح دادن امروز نظر علمی اصلش هم گرفتن نه تازه شد مثلا 60 سال 80 سال قبل که یه شها الکتریکی دور بدن انسان رو کرده به تقریبا به طول سانتی متر. و این شا در بدن‌های اخلاق مختلفه. مثلا ممکن است بعضی اخلاق این شا رو پیشریشون باشد یا کی لبخندشون نباشد یا سینیشون نباشد یا کی کی کی کرد. بعضی بدن‌ها کامل هستند، لگاریز دیگری کرد. بدن می‌تونه این شا در چند جای بدن تریبیار سازد. این چند گوش ریکی شد. این هر سیم درسته. مثلاً کودکان این شا می‌مونن. این یه نوع ریاضات نسیه. یعنی قدرت نفسه رفتی هم به عالم ارزش نداره. بگیم این درسته بد. ممکنه طرز بدی هم باشه انسان کافر ملحد مرتدی باشه و کارو بزشته انجام بده اون خدایی داره ممکن خیلی آدم خوبی هم باشه مم... چون نفس رو واسه چیز نکرده این لازم نیست که هر کی فوتبالیست بود آدم خوبی باشه آدم بدی باشه اصلا وقتی نداره به خوبی بدی اون مرده که خودش رو تربیت کنه پا رو اون صورت تربیت کرده این نکرده این یکی درس میتره که بنای خوبی شه درس تربیت تجسم ساز خوبی شده، اون یکی دستش رو چشم داره که واسه موسیقی خوب هر کدوم به مقدار است که خداوند در انسان قرار داده این قبوه ها به فعلیت میرسه نفس هم همینطوره هیچ نمی کنه فقط اینه یک مهم این بوده یک نفس یا تأثیر دار یا نه زاره. دو تأثیر نفس محدود به خود انسانه یا شامل غیر هم میشه جواب شامل غیر هم میشه اینه که ایشون میگه بله امکان تصد نفوس انا جواب غیر چون اون مقدارش ثابته که تسلط نفوذ در جوارن خود انسان انسان اگه خوشحال خونش بهتر اثر با... پس اون حتی ممکن مرض خندش کم بشه غند خونیشم شاید ممکنه یعنی اما غیر از این انسانی که دارای تخلل داشته نفس میره بالا میتونه همین کارو در دیگه انجام بده یعنی میتونه ایشون با یک نگاه با یک تعامل درمانی مرض خندورم خوب بکنه تا این میشه و این هست البته چیه؟ یه ریاضت خاصیش میخواست. مرحوم آقا هاشم حسنی نخودکی معروف بود ایشان. ایشون که به خاطر تشویحا به زبان اون خریزه اولی به اصطلاح از مشهد خارج ایشون اصفهانی نشون، اصلا نخودکی نیستن، معروف آقا هاشم حسنی اصفهانی. ایشون مال اصفهان بود، اینکه خب روستایی نسبت به مشهد طرف شاد خاجاری که اون تو مشهد واقع شده. اینام نخودکی شورا هم در اونجا ساکن اونجا شدن برای اینکه مساله بی حجابی در عربستان مثلا عیالشون دخترشون هجاب داشته باشن ساکن نخودک شدن در عربستان رضوان هم صادره. وقتی زیاد بود افرادی که می‌رفتن اونجا به اصطلاحشون یک آبوشی داشت مثلا یک آشمانه می‌گوار. حالا فرض کنید مثلا شخصی در مشهد عرب داده بود اون عاشرت اون نخودک این شخص خوب می‌شد. داشتیشون این خدا رحمت کنه معلومه آیپای کاش بود ایشان بود الان در نمیاد میفرموس خیلی وقتا ما چون ایشون شلوغام میگفتن اهل ریاضت بود اهل عبادت و نماز و چیزا اما یه شلوغی هم میگفت خدا رحمت کنه های حمای هاشا ها بوس قچانی میگه ما پیشیش می, شلومه هم ای می, ایشان می خود ایشان چون اهل شب زندگی می‌کرد خود استاد در, در شربتی خدا به تو از خدا رحمت کنه آقا من گفت که گاو گیر می می‌کشد هم شبا هم آقا مرغری هم خدا رحمتشون هر ثایی بود من میگم آمیصا مثلا یه نگاه کنم به حواشی حدیگه چه چیزی یک شربتی برای عبارات بوده کیشو بعدا هر از این هم آید مربایز که روی خودشی هم گیرمی از آید که گاهده ما در همه حصنایی کشون رو می یه می کنم یکی که نباس می گردمشونی هم دستیمش رو ماری بعد می دادیم افراد برای طرف سرما خورده یکی خیلی مرگز هم نباسی می خوب می شودن. این هست و چون بعضی مطال رو گفتیم نشده این من چون جای نهی چهر این آیه آقای مورواری بر من نهر کرد. تو از آیه مورواری می به این که آقای این اواخر به من گفت که آمیزا بیشون آمیزان می گفت آمیزا می گفت آمیزا, آمیزا برای این ریاضتی دیگرم تنمون به که بعد از این که افراد که می برای مشکلات شفای و اینها دیگه احکیاری نباشیم بهشون آشی بدم مثلا. این شفا رو تو خواهم تو د بیان اینجا دست در دست در دست دست دست خوب بشم برم بیه خدای عاشق آقای موروی برمنه هفته آقای موروی خبه در جلاییه واقعا بزرگان رزوان الله تعالی و و علی مردم های نخودکی در از این نفوس قردیه اینه که ایشون نشه نفوس قردیه مسلطن بر کواهده از این هم بالاتره خیلی از این من چون من رو ماشا تنزی. به نظرم میاد نیاد که اهلش ها سهلسلو که بودن نبوده ریاضه از ریاضه من رو بودی خیلی ریاضه نیم کامل باید احوالش هم یک شفی از پسر گفت هم پرسیم گفنه نه تداره من نه تا کتوهادی دو به نه. هر حال کجماک ها ایش رو میفهمه با حال نفوز سکتکون داره ریاضات ها قوتون صافیه را که از کردن این وقتی به قوت صافیه نداره و از این مقدار این میگه خیلی بالاتر نه این درجاتی که ایشون دارد بعد این یک نو سهره این هم اسمش سهر رو داشتن از کردن این هم امر وهمیست آزوی میپرمون لاشو بردن بردن نفوز لسفا آها به ریاضات فا از سروز امور تکلیمیه راسته این اما رفتی به سفا نداره این اشتباه نشه این یک است که خداوند در نفوز قرار داد ممکنیه کسی فرد فاسدی هم باشه اما نفسش رو به این جهت آماده کرده مثل یک کتپالیس که بسیار فرد پالیس خوبی هم آدم بدی، آدم فاسدی ها سیغن هم نیست یک قابلیت خاصی، یک حالت خاص داره جایش اینجا نیست که این صحبت رو کن. و تصرف رو ها انوجه ها سرفن حقیقی یک ماف الماشی عن المش و میاه الجاری عن الجریان اصلن بحث ای... ای قابل ماشین قصاری که داره به سرعت حرکت میکنه با یک نگاه کردن نگارش ترمز میگیره قسا اختصاصی به این جهت نداره بالاتر از این حوا نمیدونم چی هست بل قیل ان نهاد المعنا مجنون فلسفد به خاطر غریزه در ما مار هم میگن چشمش همینطوره یک حسد داره که اگه به طرف نگاه بکنه اون بهسا سیدو اون مشهور میشه اصلا خوشش میکنه با چشم که نگاه میکنه اینها اسم های ظاهری هست مثل هم اون درس مثل پاک بله ف انقا یا نظرره و حیوانه عوقف بود. میگن مارم ایشون به شیرم نسبت بذا شد. به شیر هم میگن همینطوره حیقتی که داره طرف رو از حرکت مینداید. بعد حالا حقیقت این مطلب چیر باشه بعض می ال ال لاداری عل قرمتی به عنوان یعنی به عنوان اولی بلشااف شده. بله. راست. مالا نیستر از تب علیه من امینار اناوین این قدرت که انسان بسونه شفا بده حالا یا بخواد ریاضیات حقه باشه یا ریاضات باطله باشه این قدرت این پی نفسه حرام نیست یک و این سه را هم مردم سه ممکنه بشه بگن اما در واقع امر حقیقی این امر واقعی یعنی این امر اعتباری نیست بله بعضی از درجاتش مال مقامات او یا الله که حتی بعد از وفاتشون حتی به ذریعشون تنسط پیدا میکنه شفا بیدن میکنه مثل همین مثالی که همون در شما حرف بیرن از مرموم آیه آشانسانی نخود می که چونی نه بشن در شرمهادیشون من خود نظر موبارش اینم که میگو آیه نخود اکیم میگو من دارم این ریاضت میبینم که شفا رو همون دسته در برام بدن این مقدار و اون نفوس الهی طبیعیه که فراتر از این بالا شهره یعنی ما نفوس دشویه عادیه رو داریم مفهمومی در بن نام ناو عنصط السحر علی اول کی صراغ هم خود نیرو واسه است یعنی سحر نیست اثرات یک مشکل اینه که مردم و استادین معنای برای سحر کردن در ضمن همه ما همیشه با بین بغیت این تفکر و استاد درست نیست چون سحر فقط یک لغزینیه در دانشگاه ها یا در قوزها ما به کار ببرین و محدود باشه یه مفهوم و عرفی است یکی از مشکلات مفاهیم و عرفی مرز و مشخص نیست اینه من چراران را عرض های علمی مرز مشخصه مثلا آموسیسیلی ژیسو پنجا این مشخصه چند یه دوار ماده داره این مشخصه دقیقا معیل میشه. اما سهم چیه؟ این مشخص نیست خیلی از ارزوی سر میبینم نمیتونه بگیم بابا این سر واقعا نمی کنه. مشیخه خواهد در باب 3 سهر اصلا چون یک طرفش نریه کلمه میسر باشه اصلا مفاهیم عرفی چون دست عرفه و تدریجان شده و در طول زمان شده و افکار عرف مختلف ذهنیاتش یه چیز زن دهاکر میگه سر یا استاد دانشگاه میگه سر یعنی اصلا سطح فکر کاملا مختلفه اون نمیفهمه تاثیرش چیه یا سر سر اون شد علی مروای بوجنوردی قدس الله نعسه سلام به مناسبت سلام. البته شما رو سوال علی برنامه نه من بده. من میشه. من دیر هم باز اون اینجای شهر مشهد سابقا ایام بهار مثل کوسنگی بودین بوجنور شهر شده. یکی از مناطق استراحت ترابوی مشهد کوسنگی. میشه ما یه صفحه در بهار کوسنگی بودیم. چون مرحوم یکی از دو ماه ما کوسنگی به شهر نمی آمد. با همون جو، آبی اونجا م میوز دی توی های آبی داره بر درخت با هم بری درختها و اتوب و آراا غذا میخور و اونش میکن. حال بژنادی میفهمیم که سفر ما بهه نفر بودیم توی کوسنگی بود؟ مثلا برای در تویح اییوم ای یکی از این ماار مشهد مشردداران چ شما یه خاصی جای هم می تو ایران تو این گردنشو بلند میکنه مثل چوب به مسرت ها من به اندازه سی سانتی از بدنش اینیا بالا و سرش هم مشای میگم ایشون که اون از این طب شما رو به ما رو شد ما همه ترسیدیم مثلا شبرا و همه ترسید درخشید یه میشه غزری که داخلش بود نخوراکی مرو اونم گفت چیه چطور گفتم واقعه ما از این طرف گفت یه چیزی خود ماره برگشت خدا خدا ماره کله نفر جوان و شما اینو فیلمال دی خب در عرض که اینو بگم خوب شد دام این قصه قیلن... خب, خب میگه این سر می کنه میگه اول نم نواصت چهره علی این نم نواصت که خوب اون این مال ایمان نفوس قوی است این تاثیر رو میگذاره من مثالایی از اون ار کنم که همیشه واقعه شده این که مثلا کتاب ازای شدرت با خوبی در اینا دیدن مثلا این در خارج وقوع خارجی گفت که اصلا یک دعای کنه آنیشون گفت هم هم چیه بگید چی اصلا به طور کنی بل من نه اومن صدق اومن سهر صحر علیه این به اصلاح هست واقعیت داره انصافا هم نه این راست راستم هست یعنی بابند چون تأثیر هم لیکن اوام ازه او صحر و این کار حرام هم نیست نه برای شخصی که فاسده حرامه نستجیر رو به الله انسان فاسد فاسق لاعبادی این جور انجام به این کار رو دل برای حرمت نه داره دلیدیم دل این دل دل رو آنی مصرف میکنه برای فی نفسه خود این عمل که انسان یا قدار نفسانی فی داره کنه ما رو مثلا تسخیر بکنه چه حرمتی داره از کجا هم چه حرمتی به پیدا بکنه بله. بعد از ایشون الان ناظرمانیه تبعم همه ان تربیت نفس ریاضات حده هست تا تشریف اصل این معنی ریاضات حده نیست ریاضت هست یک نوع ورزشی یک نوع عمله, یک نوع تربیت نفس خروج از اوهال ال سر در و فعلیت اینا حساس دروسته اما لازم نیست ریاضات حده باشه ریاضات باطل هم این کارو میکنه بله گفته شده بعضی ها بر اثر ریاضات باطله که مثلا نستجی و نوع اهانت به قرآن میکنن خب قطعا اون کار حرام اما یه انسان فرص نفتجی رو شرور فاسد فاسدی هست با مثلا یک چلی نشینی بکنه و ما رو مثلا تحصیح بکنه ایر از اناوین مثلا دیگری که باشه مثلا تزیه امرو اینها ایر از اون انابین خود این امرو پی حرام نیست تاثیر انسان در پی اما اینکه سه دبا سه برش نکنه